قانون پوینده در شهر کوپنهاگ درمارک بعد از امروز شنبه سوم دسامبر به مناسبت گرامی داشت جان باختگان راه آزادی و اندیش و قلم پوینده و مختاری و سایر قربانیان ترورهای سیاسی مراسم ویژهای را در کتابخانه پوینده در کوپنهاگ از ساعت پانزده تا 21 برگزار یک برگزار میکند همکنون روی خط تلفن آقای علی آزاد یکی از برگزار, برگزار کنندگان این مراسم روی خط تلفن ضمن سلام و صبح بخیر حضور شما آقای آزاد راجب برنامه امروز خواستم توضیحاتی رو برای را برای شنوندگان رادیو البارز بدید شما و شنوندگان شما من نهدی آزاد هستم از کوپنالخ از طرف قانون پوینده در رابطه با مراسم بزرگداشت جانباختگان راه آزادی و قلم اندیشه پوینده مختاری و سایر عزیزی که به عنوان خاصای زنجری در ایران به قتل رسیدند مراسمی رو امروز برگزار می‌کنیم که 18 سالگرد این عزیزان هست این برنامه هر سال در دومار در کهچنوی دیگه و از جمله در تهران برگزار میشه دیروز هم این مراسم در به مزار مختاری و پوینده در کرج برگزار شده بوده که مواجه واکنش خیل شدید نیروهای امنیتی مواجه شده و تعدادی دستگیر شدند از جمله آقای زرفشان و فرزند فرزندون دستگیر شدند و تعدادی از اعضای قانون نویسندگان بر صورت این برنامه برنامه‌ای هست که در راستای تحقق پیدا کردن به صدا حقوق و چیزی که در جمهوری اسلامی بر صورت امکان پذیر شاید نباشد اما چون که این پرونده پرونده ای هست که از طرف رژیم مختومه اعلام شده به خاطر این که اصلا رسیدگی رو نداشته اما این پرونده پایان پیدا نکرده و همچنان مسئله ادارت خواهی مسئله پیگیری این در افکار عمومی نزد خانواده ها و نزد مراجع بین الملدی پابرجاه هست و این مراسم ما در واقع یک نوع عدالت خایی هست برای یادآوری اینکه این پرونده اگرچه از نظر مصمودین جمهوری اسلامی مختوم و بسته شده است اما در افکار عمومی و در بجدان جامعه باز هست و خواهان رسیدگی این در صحبتهای شما مطرح کردیم که پرونده قتلای زنجیری به عبارت دیگه قتلای سیاسی مختومه اعلام شد چرا این جمهوری اسلامی این پرونده را مختومه اعلام کرد؟ اسلامی از مجموعه این ده‌ها صدها قتلای این شکلی که صورت گرفته بر صورت وزارت اطلاعات رژیم در سال 1377 قبول کرده که بخشی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل حداقل درقل نفر رو به رسمیت شناخته و جمله پوینده و مختاری و فروهران رو به رسمیت شناخته و دادگاه تشکیل شده بقیه دیگران قبول نکرد و توی همون دادگاه به شکل بسلا وارونه عمل کرده. قاتلین بخشیده شدن و در عوض وکیل بسلا جانباختگان محکوم بزن زندان شد 5 سال آقای زرفشان در زندان با 50 ضربشان لاق محكوم شد در صورتی که کسانی که در صدق این چیز بودن به اصطلاح آزاد شدن و یه فردی رو بونوان اینکه فرد آخری مهری که هم از روی روانی آدم تعادلی رو نداشت آقای به راحتی اون انداختن جلو که میتونه این اساس بکنید که خانواده اعلام کردن که ما اولا دنبال انتقام گیری نیستیم، ما میخوایم ریشه و آملی نصلی رو پیدا بکنیم که وزارت اطلاعات هست که خب اگر که بخوایم حساب درست بکنیم در واقع رأس اینا خود خامنه ای هست و مراجع تقلید هستن که دادند و این مسئله رو شده هست در هر صورت اونو نخواستن این مسئله رو پیگیری بکنند و برعکس کردن که خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن حتی علاره که وزارت اطلاعات و رژیم قبول کرده که اینقدر توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته حتی اجازه نمیده که خانواده ها سر مزار عزیزانشون سال روز مراسمی رو برگزار بکنند در صورتی که چینا برای مردهای 1400 ساله خودشون مراسم های تشکیل میدن برای مردهای خودشون روزها و سالها و ماها تعطیل اعلام میکنند و هر جوری که خواستن آزاد هستن اما به وقتی پای قتلای زنجیری رسیده هیچ کس حتی حق نداره مراسم تو خونه خودش تو چار دیواری خونه خودش برگزار بکنه خانم فروهر هر سال دختر خانواده فروهرها هر سال برای مراسم نه تنها اجازه پیدا میکنند تو خونه در بسته خودشون مراسم برگزار بکردن بلکه یک هفته قبل خیابون و کوچه های اطراف حکومت نظامی میکنن که کسی رفت آمد معمولی این خونه رو نداشته باشه امسال قرار یه قدم جلوتر گذاشتن یک ما قبل از اون که این مراسم برگزار بشه خانم فروار توی اروپاست وقتی برگشته اولین چیزی که دیده نامه به سلا تعقیب غذایش هست که هزار کردن برای اینکه که و مراسمی رو برگزار بکنیم خب طبیعی هست در چنین فضایی و در چنین شرایطی خب قاتل خود رژیم هست قاتل فقط این چهار نفر نیست که قتل شده ده هزار نفر و آل سیاسی رو اینو قتلان کردن اما این به خاطر اختلافات درونیشون و به خاطر اینکه خیلی مهرز بوده، روشن شده و مسئولین اونو به محاکمه کشیده شده اما علی رغم همه اینهاش کدومشون از اینا به شکل جدی مجازات نشدن، همشون آزاد شدن و وکیل خانواده راه با زندان شده. در نتیجه اونا این پرونده رو مختوم اعلام کردن، گفتن تموم شد. اما این پرونده تموم نشد. به این پرونده برای دادخواهی نزد افکار عمومی، نزد نسل‌های آینده نظر تاریخ واقعی است و بایستی جمهوری اسلامی در مقابل این قطف که صورت ارتفاع سخو باشه می گفتن که دولت روحانی دولتی است که مانع مراسم یادبود قربانیان نخواهد شد ولی دیدیم که دولت روحانی بدتر شد برای جلوگیری از مراسم یادبود قربانیان قتلهای زنجیری این چگونه است که دولت روحانی داره آقای روحانی نه جدا رژیم بوده نه جدا از این سیستم امنیتی او سالهای سال دبیر اصلی امنیت ملی بوده و بخشی از این پروژه هست بخشی از این جمع قاتلین هست انتظاری هم نیست اما شرایط و موقعیت ممکنه انسان رو در شرایطی قرار بده که موضع متفاوتی رو بگیره شرایط طوری هست که چی جامعه ملتحب هست مردم انتظاراتی رو داشته مردم اومدن به, قول معرف به نوعی بین بد و بدتق خلاصه بد و انتخاب کردن با همه اینا واقع این هست که بخش دیگه حقیقت این هست که در ایران حساب و کتابی رو نداره وزارت اطلاعات برای خودش در مدست خاص خودش رو داره سازمان های موازی خاص خودش رو داره نمیدونم امام جمعه برای خودشون در کپوزه های مختلف خودشون رو دارن اونجا هیچ حساب و کتابی نیست یک سری باند مافیا هستن که حاکمیت دارن و هر کدوم سر بسلا خانهی نشستن و محدوده ای رو در بسلا کنترل خودشون دارن چیزی رو به حساب قانونی یا روابط و زوابتی وجود ندارین ها خودشون هستن هنجور که خواستن روانی حتی اگر که اعلام هم بکنه که برگزار بکنید خب وزارت اطلاعات کسی به حرف اون گوش نمیکنه هر کسی برای خودش هست نماینده مجلس میدارن زدام به خاطر اینکه گفته که نمیدونم فلان شخص چرا حساب شخصی خودش پول وزارت خونه رو وارد یعنی هیچ حسابی رو نیست که بخواد از این زاویه به خود برخورد بکنه که مثلا اگر روحانی میتونه کاری بکنه میتونه یا نمیتونه بس که اساس بنیان این نظام هست که از ابتدا روی زور و روی به امنیتی و سرکوب خشن سرمایه گذاری کرده حیات و زندگی این رژیم روی سختگیری ها و روی سرکوب و قتلا و جنایت ها استبار هستن نتیجه هر گونه انتظاری رو که بخواه نظر قانونی یا مراجعه به حقوقی پیگیری بکنن آب در آبیان حاضر کوبیدن هست. چون اساساً این نشون داده توی این نزدیک 14 هست. که همواره حتی به قوانین ارتجاعی خودش به مسائلی که خودش تصویب کرد و تنظیم کرد پایبند نیست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای علی آزاد که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم ممنون از شما از اینکه این وقت در اختیار ما گذاشتید به شما و آشنابان شما درود میفرستم امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید.